Up, out, up

وانی فارسی بناوی کردگاری راه و بدیه نر جگرانی دلالو لاگرانی گوشه وانی فارسی سلاوتان لدکینو آواتی سلامتی و کامرانی بده بودخوازین

لادریای جای برنامه‌کانی وانی فارسیدا امروجو دگرین بو و توج یک با تلفون علی رضا هاوری رامین او رامین جار جار پیکو د سن بو پارک یان سینما دوی شو علی رضا بیکار بو تلفونی ل رامین کرد تا اگر کاری کی تایبتی بسطونیه پیکو پیاسه یک کن بلام رامینی ندوسیو

علي رزا لغلب باو كوداكي دواي خوارد نشيو چون بو پارك او راج دواتر سر لنو تلفوني بو رامين كردوو احوالي پرسي لغلب من دابن تا جو لا و تويجي نيوان علي رضا و رامين سراتاي برنامكا باو شنوه كان دست بيداكين اگر بوتان دکرية یاد داشت

دیشب، دیشب. دویش او. من تلفن کردم، من تلفن کردم. من تلفونم کرد. تو نبودی، تو نبودی. تو لیه نبودی. خانه، خانه. مال. تو بودی، تو بودی. تو لیه بودی. کجا؟

کجا؟ کیه؟ دوست. دوست. هوره برادر. رفتم. رفتم. چوم. تو میشناسی؟ تو میشناسی؟ تو بناسی؟ من نمیشناسم. من نمیشناسم. من نان استم. کشتیگیر. کشتیگیر. زوروان.

پس فردا، پس فردا. دوست بی. مسابقه، مسابقه. پیش برکه. ترکیه، ترکیه. ترکیا. او میرهاد، او میرهاد. او دچی. خداحافظی، خداحافظی. مالاواایی. برای خداحافظی.

برای خداحافظی با ملوایی تو رفتی تو رفتی تو چیت بعد از بعد از دوایی شام شام ش بله بله بله پدر و مادرم پدر و مادرم دایک و باوکم به پارک رفتیم.

به پارک رفتیم. چوین بو پارک. خوش گذشت. خوش گذشت. خوش بو. بد نبود. بد نبود. خراب نبود. مادرم. مادرم. دایكم. او اوماده. او اوماده. او هات. او آورده. او آورده. او هنای. چای.

چای چای میوه میوه میوه شلوغ شلوغبلغ او بود او بود او ل بود مثل مثل وک همیشه همیشه همیشه مثل همیشه مثل همیشه وک همیشه تابستان ها

تابستان ها هاوینا تابستان تابستان هاوین شب شب شب شب ها شب ها پارک پارک پارک فرصت فرصت درفت فرصت خوبی فرصت خوبی درفتي كي باش رفتند

رفتنده رويشتن چون

استا جوید گرین علی رزا و توه جنوان علی رامی. و رامین دیشب تلفن کردم رامین دیشب تلفن کردم در خانه نبودی در خانه نبودی

کجا بودی کجا بودی دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم تو مهدی را میشناسی تو مهدی را میشناسی مهدی نه نمیشناسم مهدی نه نمیشناسم مهدی کشتگیر است مهدی کشتگیر است

پس فردا برای مسابقه به ترکیه می رود؟ پس فردا برای مسابقه به ترکیه می رود؟ پس برای خداحافظی به خانه محدی رفتی؟ پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی ؟ بله، برای خداحافظی به خانه مهدی بله، برای خداحافظی رفتم؟ تو دیشب کجا بودی؟ تو دیشب کجا بودی؟

در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم. در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم. خوش گذشت؟ خوش گذشت؟ بله، بد نبود. بله، بد نبود. مادرم هم آمد. مادرم هم آمد. او چای و میوه آورد. او چای و میوه آورد.

پارک شلوغ بود. پارک شلوغ بود. بله، مثل همیشه پارک شلوغ بود. بله، مثل همیشه پارک شلوغ بود. شب‌های تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است. شب‌های تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است.

استاش دو همان همه نوتویج بلن به ورگیرانی کردیوه رام این تلفن کردم

رامین دوی شو تلفونم با کردی در خانه نبودی لمال نبوی کجا بودی لچو بوی دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم دوی شو چوم بو مالی مهدی هاورم. تو مهدی را می شناسی؟ تو مهدی اناسی؟ مهدی نه نمی شناسم مهدی نه نی نسم

مهدی کشتگیر است مهدی زوروانه. پس فردا برای مسابقه به ترکیه می رود. دوست بایی با پیش برکه اچه با ترکیه پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی؟ تواته با ملاویی چوی با مالی مهدی؟ بله برای خداحافظی رفتم بله با ملاویی چوم تو دیشب کجا بودی؟

تو دوی شوله چوی بوی. در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم. لی و دوی خورد و لگل باوکمو دای دایکم چوین با پارک. خوش گذشت؟ خوش بو. آره بد نبود. آره خراب نبو. مادرم هم آمد. دای کشم حد. او چای و میوه آورد. او چای و میوه هی نه.

پارک شلوغ بود پارک قربالخ بود آره مثل همیشه پارک شلوغ بود بله وک همیشه پارک قربالخ بود های تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است شوانی هاوین در کی باشه با چون با پارک

پیکو او توجه كمان 20 هرواک رامین علی رضا وتیان لهابیندا زور کا د چن باخی گشتي چون روزانه دنیا گرمه لهابیندا خلکی ترانو هندی شاری ایران هندیزر بوشیو یان خوردن میو چای رول پارک سیرانگا کنده کن هو درین یوش بین بو پارک سرسوزو جوانو گورکان شارکان ایرانو

لاراب وارد لون تجربه تا بنامیده هاتو برازان هملاعتم با خواهی دور